اللهم ال توارا اجلنا و ان الله عنا شرنا و شرنا ارحمنا برحمتك ارحم در بحث تفسیر که قرمت تفسیر و این مسلم بقوده. مرحوم شیخ عدلی برایش دلالت میکنه از مرحوم میروانی در حاشیه ای که در مکاسب داره این صاحب هم مرغوم ایروانی نکات جدیدی رو اضافه کردن و زرافت هایی رو مفرد کردن های که مرغوم آقای شیرازی آشمان به استمیزه دوبه و موزه شیرازی اون هم زرافت های زیادی داره این صافان. از مرغوم آقای ایروانی نه یعنی ایشون پشتال کردن که خود تطریف به نفس حرمت نداره ایشون حبازشون اجمالا این طوره این ای نفتشیف لفتیل ایسه عنوان همه اناوین محرمه خود این عنوان حرام نیست یه توضیحی رو بعد عرض می برای یه در مطلب خب حالا همین توضیح رو اینجا عرض بکنیم ببینید من قبل چون این ممکنه که اشکال دیگم این بشه لگه ایر اشکالی من اشکال دیگه بگم خیلی از اشکالیشون چونیشون اشکال بکردن من اشکال بیرد. و اونی اشکال این است که اونی که در لسان آی مبارک آمده ریلون للمتففی این متففشون سیره فائده دیگه به اصطلاح یعنی یا اصولی ها یا علمای های عدد اسناد در اینجا اسناد اشتراوی متفف نداریم لا تو تک اون اسناد فرم می کنن اون وقتی بنایی داره و درست هم هست در لغت عرب و در لغت پاس پاسید اسناد اشتقاقی غیر از اسناد حدسیه یعنی ممکنه در یک جای اسناد حدسی رو بکنه اما اسناد اشتراقی صدر نکنه مثلا بگم این آقا من باب مثال ماشین رو از اینجا تا اینجا آورد ران ماشین اما راننده نیست عنوان راننده یا عنوان عنوان راه بردن ماشین عنوان دیگریه مثلا در باب نفقه جولا زنا ارزانی لاین که ها اللازانیتن این زانی رو به معنای کسی که زیاد انجام میده کارشه مشهوره اون زانیان و ان یعنی به عوض اوخرا در باب حد به مجرد یک بار زنا کافی است برای اجرا حد الازنه راجو متناسب اما در اون حکم نکاح از زانی لاین که ها اللازانیتن یا از زانیت لاین که ها لازانه اون اززانیه مراد اون است که مشهوره مشهورات به زنا مشهور زیاد انجام میزن مشهوراتی خوزات اعدام ولی ازا در آیه از سارق و سارقه در اونجا مراد تحقق فعله این یک ذرافتیه که ما بدونیم در یک جا مراد تحقق فعله در یک جا مراد اتصافه اصلا یک صفتی پیدا بکنه اصل اولی حالا اونجا یک نکته من بیانیدم سابقا هستم رأی هم شفارنده یعنی میخوام تکرار نکنم که خیلی بحثی سابقه عرض کردن که از سارق و سارقه یعنی چه بود خیلی عربی بشه اینی اورفی بشه اورفی شده که بدون در فیصه گفتین شما از نظر عرفی به خاطر قضایای لسانی از زانیت ولایتها الا لازمن از زانیی مراد کسی باشه که کسره بده از دنا. اما از سارق و سارقه مراد اونی که همون دفعه اول. و اینو ما از کلمه وقفه صحبت او این وجود اونجا جا نداره حالا اگه درست باشه؟ چون صبوران توضیح از قبل نیومد. بحث آب خارج بشه. یه وقتی از مطلب داد. که اهل آیا درست باشه؟ نه عربیان آقایان عرب زبان ترجمه اون بحث دیگر است. به هر حال اینو خوب دقیقاً بفرمایید اشتقاق اسناد اشتباهی، غیر از اسناد هداییه. اصلا فرصم فلانی ماشین رو راند فلانی راننده است در همین روایتی که در بحث قناه درباره در آیشه که میگه در روز عید بود رسول الله بر و به اندهاج جاریتان تغنیان ولی ستا به مغنیت این تغنیان آواز نخوندن اما آواز خون نبوده. یعنی به طور خنی کارشون نبود آواز خونده ولی ستا به مغنیت این چون ممکنه اینسان بگه مثلا مثلا امروز فلانی یک دست برای ما گفت یک دست گفتن یک چیز فلانی مدرسه این فرم میکنه پس اسناد اشتراقی با اسناد حدثی اینطور نیست که همیشه یک دور باشه و چه نقطهی در تحریل مطلب هست ما در مسیر تدبیر زبان شناسی چنین کلمه مفصلی را دیدم فرق بین این دوتا قام زیدن و ز زید و قائمون. بین قام و فائم رو یک فرار خیلی دقیقه لغوی گذاشیم که الان وقت نمی‌تون مشهالا خیلی ماجون بحث نشیم ممکن بود از اینشون بحث اگر تدفیف به کار بردیم میشه این مناسب با اسناد حدیثی وقتی بگیم تدفیف حرامه یعنی ولو بیای بار انجام دادهدن اما متفف رییلوندل متصفف کسی که کارش اینه کارش کمپوشی رییلوندل متصففی لذا ممکن است این شنیبل اش... اشکالی است که مردم یهرمانی مطرح کرده. ممکن است شما ببینید که ما نداریم چند فروش حرامه کم فروش و این متفف ای ای اینم که طلبه من تصفی تصفی یا ضمن زندگیش اینطوره. در عبایتی که وارد از ابن عباس دیگرا، پیغمبر اکرم که مدینه اومدن، یه کمپ فروشی در شهر، خب به تفکر. بحث این نبود که یک کمپ فروش باشه، همه کمپ فروشی مثل مثلا اته قوم لوط، خب این میگن که در کتب علامه مؤلفی در تن خودش این شذوز جنسی و انحراف جنسی رو نگاش، ساوره قدیم در تاریخ بشر داره. در اصل در قرآن درباره این میفهمن ما طلالكم بها بنعهد من الالعالمین. خب این با شواهد تاریخی نمیخوره. خب اول از همه هم بوده این انحراف جنس در اونجا عرض شد در این بحثام تا کرد انحراف جنسی به عنوان شذوز جنسی قبل از قوملو بوده. اما به عنوان جامعه که در جامعه راه میفته. این در زمان که یه جامعه اصلا این طور بشه کل جامعه اینطور بشه خوب دقت پس دو بحثه یه بحث سر خود عمل که ما اصلاح هم بشیم اسناد حدثی یه بحث سر مثلا شهرت و اشیاء اشتیهار در جامعه کار انسان بشه این ما اصطلاح هم اشعار اسناد اشتقاقی اونی که در قرآن آمده وین و للمتصفی. آه اشتقاقی وقتی چی میشه؟ ولی به و لزام داره الذین اتبعوا علی الناس، الک تالو به نظر شریعتی آورده که اه داره اضافه در این اینکه در اسناد اشراقی از فاعل مزممت بشه، نه این شبی هم قاعده و موضوعی میکنیم <تصفح> اگر مثلا فاعل باشه، فعل نباشه، دیگه موضوعی میونه. این خلاف قاعده که دقیقه هم میدازه این شبه ممکن است در ذهن شما بیاد که شاید این آیات مربوط به یک ای که این توش رواج پیدا کرده مثلا میگن در جامعه ما مثلا دروگ گفتن رواج شده کرده اصل اولی شده این توی ای که توش رواج پیدا کرده تطریق نه تطریق حرامه وقتی دیگه این تطریق حرامه یعنی یک هم که انجام بده حرامه دقیقه کردی یه دست میگه ریگر منخل به این تعدیر الذین اعدادتال و الناس یه صوبون و اعداد کادو هم و وزنو هم و این معلوم میشه به عنوان یک سیره به عنوان یک عمل به عنوان یک استمرار این کیشون داره که کی تطفیر و بعد این رضا ممکن است که کسی این شبهرش این آیات ناظره به تطفیرش نیست که شیخ انصاریه عنوان بحثون تطفیر قرار ده این آیات ناظره که ناظره است به حالا کسی یک این کار انجام داد این هرامی متفسف بودن استهقاق آتش داره استنگاره که و زندگیش یعنی این لو یک روشی برای خودی خرار داره ها این هم یک احتمال پس این یک شبههی ممکنه پیش بیاد که این اشتقاق اسناد اسناد اشتقاقی با اسناد حدثی فرق میکنه لیکن فرق میکنم خب این شبهه لر موابن بدیه باشه اولا انصافا ذهن انسان یعنی انصراف و ارشب بی که از خود تطفیف نشده مضافاً بقیه آیات الحمدلله اشتقاق اصنادشون اصناد حدثی هستن و او فلکیل و لا من المخسرین و زن ولا هم تبخست و تمام این اصناده ها اصناد اگر اون آیه متطفی بله آیه متطفی این صاحبا اصنادش اصناد اما بقیه آیات تماما اصنادشون اصناد حدثیه بلا طب تصننف بلاف تن اصول مکیات از بقیه آیات به زمینه آیات در میاد که اون بحث یا اون تنقیسه متن نسخه مکیات این هم مثل تفصیل حرامه بعد این پس این شبهه مرتفع شد بعد ایشون مثلا اینکه این تفصیل حالا تفصیل بود م... این که ایشون گفتن برابری اینکه بگیم جمع آیات اختصار میکنه که تفصیل هم حرامه متفره بوده حرامه برنمی‌گشت اصل در بعدش یک ای نکته ای پیدا بشه که به مجرد حدوث فعل وقت متاسفانه خارج بشه ای وقت اینکه وقتی باشه اونو وقت خارج بشه ما یه تحلیل لغوی خاصی داریم که اصلا مشتر مشتق صفائم تحلیلش بین تقریبا و مقام اصلا چه نکته دوره هر دو یکی میاد نه اسناد به لغوی هیئت اینو یک تحلیل خاصی برای بین فرق بین قوام قوام نکردیم که این چه جور چیزیه این شده وقتیه لیت عنوانا من الان عناوین محرمه اعنی الکید مکیال ناقص و کذب بحث المیزان بحث درست عنوانش درست جواب میده مع دفائر حق کاملا خالص میگه خود این عمل حرام نیست داش یک چیزی برای خودش توازن داره توازن نامستی میده اون که هر او کار حرامی انجام نده که مون اضافه زالکین نقشه به تعبیرش یا تمام محل مشتری بین خارج مثلا به این وقتی بازرگانی کرده سرگرم گرم کم داده 1 کیلوگرم بوده 900 گرم بعد سرگرم گرم رو به خودش وشید در وقت وزن کردن وزنی که بوداش 900 گرم بود اما یک لوشی آیه اسباب حرام کرده که با وزن ناقص وزن کرده او اراده المقاصت می یه این ذوقه فرصت بوده که 100 گرم گردون از این شخص بگیره در آن فرصت مناسبه با این ترازوی ناقص بهش مانوان از این را به انسان صدگرم خودش که ازش میخواسته تقاس میکنه چما این که خود اعتاق ناقص هم حرام نیست بلقی از تصفه به موجود که انسان همون ناقص رو بده اگه حق که اون در این باشه و این نمال محرم ادم در بقیه, بقیه تر حرم محرم اینه به خود کم کردن ترازو به نفسه حرام نیست و کذالک ناقص. کم بله ع ه اللالف حق محجلن اگر حق معجر نباشه حال باشه و الله لم یهکنظال که ایلا به محرممه. نه، انع عظ حروول رو به فعله که اینشاال این بر توزیش بره. اگر اظهار بکنه اظهار اهم مزی که به زبان باشه یا به فعل باشه ان ماضفع او تمام ه میگه این گردانی که دارم بیرم یک پیروز یا به زبان میگه یا ظهور حالش اینطوره من نبولهیسه به تمام هر کار کار محرمم لیکن چون دروغه نه تطفیر. من حیث الکیز یا کذب و این لم یظهر اگر اظهارت نکنه لم یهرم من حاضر حیث ایرم این خلاصه اشتالیشان که خود این و ولذا اگر مرحوم آقای به اصطلاح ایروانی اون اشخال من اضافه میکرد بهتر میشد. منم میردم خود کیل ناقص کردن خود شهرام میز خود وزن ناقص. فقط من یک ترازی دارم، شوخی بازی کردم. وقتی سنگ یک کیلو رو در واقع 900 گرم میشد. با واقعا بازی کردم با اون طرف. خود این کار کردن که حرام میز چون ممکنه من به اسم یه چیزی بگم که چشم مدار بعد خرج کردم و باباشوش میزنم که خود این کار فینقشه حرام می. و خب شاید اگر مرحومی روانی اون اشکال دفعاً عرض کردن اون رو اضافه بیکرد شاید بهتر میشه دکرد پس بگیم خود این کار حرام نیست کونول انسان متففه هرام نیست اصناده میشه قابی دقیق کردی خب هم لن میخوای متففه کفه لایستو قایله که اصناده لایستو اشتفاق هم داره اشتفاق لایه قالا و متحففن. الان الان یا که این بله حالا نه میگم اگر ایشان اجازه داد مرحوم استاد بر ما در, رو خوبی در نسبه ایشان تدفیر قدر. عدم این باب ایشون من او کردم اوخذه فی عدم الوفاء این تعبیر خوبیه اگر ثابت بشه خودمون عباذه ارطبی که یقال له شیخ یقال ما شع از شعور ما تفیفکن به ما وفا هر خوبی اگر ساادش خوبی و بحث هو نقص وشه علال سبیل غون و هما به ننفسه ما این عدم و فعر عنوان اینه ال این, این اشکال ایشان که ظاهرا تایید کلام معموم میروونه باشه شد. ال ان نه قدر صد از زن این نقطه دووت ایشان درسته. ال ان ن قدر صدبت آ شریط الان نفس عنوان تکفیب الب تریب هم خیلی ملا منیرش علاق عنوان تصیف نیم حال عنوان کل انسان متففر فلزه کهمت موضوع از توندل وریده و تهدید و روی قال من و قرقی حلاات و عوااب راسته مرض آاتشه و کهالک نه حاف آات متعدده عمل بحث کم و عرز عامتر و الله رو داله کن و تصفیف و وقت به نفسیه ما من المحرمات الالهیه فرموم استاد از این راه وارد شده این مطلبی که حضرت استاد سامنه انصافت ظاهر لساندلی همینه مثل ظاهر لساندلی اینه یعنی به عبارت اخراب همین که انسان در ترازو بازی بکنه با ترازو ناقصده این کار پر حرامیه اما اگر دغد آمد بقیه‌رو داد این در حقیقت یک نوع توبه حساب میشه اگه بخویم دقت بکنیم در این مبارکه هم در, در باب رواه یک مناسبتی با ایا را متعارف میشید ثن توبتو تلکم روس و رو اموالکوم لا تظلمون ولا تظلمو دقت حسارم این خود این کار خود این کار که انسان یک راه حیله پیدا بکنه مثلا وزن یک کلو رو به رضا توش بازی کرد در واقع نوصد گرم بهش گندم بیده خود این کار حرامه اما اینکه که بعد بیاد وقعه حق بکنه اون نکته دیگه یه ما باش و ظاهر آینه ظاهرشونه برای سمخواستون ناز اشیار. اون از طبیل این طبطل فلکم رو او سا و اما اون مسئله مقاصده چون مقاصد به هر نه برای اون جایزه برای اینکه وصول حقش بکنه حالا اگه تغییر بحث دیگه‌ای مواسه برای اون جایزه و می‌تونه از راه هایی که انج... راه داره انجام بده اون به خاطر اینکه طلب وصول به حق بشه ان شاءالله تعالی یک مقداری شاید در ذیل بحث غیبت بین بحث هم برسیم چون یکی داریم و من اعوذ بالله عليكم تعاذ و علیه بنسمعت یعنی ظاهرش اینه که اعتدار رو اجازه داده با عنوان جدازه الهی یکی لا یَهْفُظُ اللهُ الجَهَرَ بِسُوءٍ مِنَ الْقَوْلِ که سوء حرف بعد اگر کسی من حالا به حرف بعد سو امنال قول شده. مشکول در که مرات فرشت داده خوش بعیده سوء من القول شده ان شاء در آیات قرائت همین هست الا منظره من هم خونده شده ان در زیر بحث غیبت یه نزار توضیح بیشترین بحث اونجا هست پس حق به ذهن ما میاد که با استاد باشه خود این عمل فی نفسه محرمه من که شما این احتمال رو دادیم حالا دیم خب از چون الان دیگه مسلم و بین فقای محاصر ما و همون دیگران آیناینی از که در مقام بیان به اصداد و شرابطه قاربند سیغه یه خطابه و که مراد جدی حکم وضعیه اصلا لاتوسلیف بر برای مقایو کل لحمو این ارشاد است به مانعیت مثلا انسان اگر بخواد در مثلا موی گربه یا پوست گربه نماز بخونه یا با منکه نماز بخونه این گفتن حرمت نداره مثلا از کنید کسی با موی گربه نماز خون بعد نماز زمین لباس شکر با موی توی رسلای کله نماز خون بعد اون رو کند نماز درست خون قوم درست اون این ارشاد است به به مانعیت و باطل بودن نماز بیشتر ما در محله خودش احتمال می‌دیم که نه به حال خودش محفوظ باشه یعنی اگر کسی آمد در موی ملا یک لحم و نماز خون ولی اون دو مرحله اعاده کردن موضوع خود اون عمل کی نفسه حرام باشه خود این کار حرام ولی اون باطله نمی قبول دلیل باطل اینی که آیان الان معروف آیین مسلم گرفتن ارشاد صرف گرفته ادله اجزا و شرایط رو مثل ذات ساعت لا کتاب این رو اج اجزا... یعنی تکلیف حکم نظری سر گرفتن ارشادی سر گرفتن درش حکم تکلیفی نگرفتن یعنی اگر انسان این کار کرد عذاب نداره تو قیامت عذابش نمی‌کنه چون تو ملائکه چون تو چون بعد تو شاهد نماز خون نماز درست الان اینجور فهمیدن فهمه الان این فهم الان متفاوض علی این کار ما این احتمال دادیم که اگر در نتیجه نماز خون بالا بعد در ظاهر خود نماز کنه سوندید؟ خود این کار معتبره، خود این کار معتبره، خود این کار احترام داره. ولی درست هم نیست، ولی باطله. توی بعدی ما هم داره که که قومان سال دوبلات، حاضرتر تا خوشه دهیم ولی از زمین بگرفتند. ساندهش روشن نیست، ساندهش تبدیلی ولی داویج ها نداره. اگر اون وعیت درست باشه، این مزمونش اینی که خود این کار، خودش یک وظیفه داره. داره، خود این کار. حالا ولی این بخش چون جاش اینجا نیست انا همه مشابه هم از یک باب هم ما باشیم و ظاهر محصوص ما باشیم و ظاهر هر عنوانی که در لسانه دلیل به شده موضوعی ات این قاعده افرادیه آقا تو ظاهر آیه بیگم بنات هست قطعا ناست یعنی اون معامله وقت اتبانه نورده اگر کسی بابو که که در همین از چون دیگه تشریف و سماع رفعه ها و و ومیزان که انما این که شما میزانتون درست باشید این یک امر تطمیمی اعلامی این اقتصاص به قانون نداره و سماع رفعه و و ومیزان الله افت بغضل میزان, میزان. یعنی که انما این یک مسئله که خداوند قرار داده شما میزان باید درست باشه، همین که میزان خراب میکنید ترازور خراب میکنید بعد بعد از خارجی یک مشتصبر گندم گند خود این کار منگونه ظاهر آلی که این رو با که تصرف بکنی. از این که این را ارتباط داده به امر تکمیم یعنی در عالم تکمیم خدا نظام طبیعت رو به این راه داده و سماعه رفع آخر بعد سماعه رفع و بعد بعد کار الهی این بوده که باید میزان ناقص نراشه آرسویات این چون استزار درست نظر درست این تقلقه قاعده است مگر روایتی بیا مثلا طبق قاعده من عرض کردم هر عنوانی در نشان دلیل عقل میشه هم به موضوعیت میشه مگر قاعده بیان الان قبل از دولت بحث در بحث اصول هست که در واقع تو سر ما هستین سه صفحه می فارسی برای تهمون. اگر ما با شما طبق قاعده سبق ازلی اگر هزار نفر باجینو باز همشون 400 مترن هم به بالو آب برگرده. اون به عرفی هست که این که سهم این داره اگر فهم عرفی نباشه، مثلا در باب وضو و قص دو تا روایت داره داره که اگر در وضو مثلا انگوشتره بشرخونه در یکی در بیاره یاده نفته کنه قص در بیاره که چه بشرخونه یاده نفته شیخ صدو ملتزه اون شده وقتی لرگی یکی این در این که اون خب که اگر ما باشیم چون قاعده هست بچش چه اصحاب گفتن فرقی نکنه قسم و جه و وضو گه شرطم دادن کافیه دروردن کافیه نمیخواد برای یکیش این کار انجام بدی برای یکیش اون کار انجام بدی اما اگر چرا چون اصر از اینها طریحیت میفرمن این توضیحات رو سابقا عرض کردن و ان شاء الله بحثش بود یک مناسبتی توی اصول تو اواخر اصول ان شاء الله مطرح میشه یک مناسبت شما پس بنا بر این خوب دقت بفرمایید یعنی بحث و زابا میزان الا تقوف یعنی میزان دقیقاً یه ای الله تقوف میزان یعنی باید درست باشه چون خدا باشه میزان حالا شما دیدید میزان ناقصه رفت سوال ترازو تو رو در سنگ کیلو میذارین هم گرمه ما باشیم و ظاهری نا این کار محرم ظاهرا که چون چیزی در تقدیر قرار نداده و میزان کار کیلو من جونم. شما میم، خیر، اجازه من وجود فیزیکی نداره. در نه، در معذوریه اگر به خواب بیوید، درسته. نه، ما از آیات مبارکه و که در میزان حرمتی که یا خود این دستکاری در میزان هم باطله یا مثلا فرضون در کیش پیمانه که نشون می دوستون یک لیتره اما یک جایی بازی کرده مثلا چند, چند یک مقدار مثلا پیمانه درمی داخل داخلش که یک مقدار سر توش داده که امرا مثلا سر سی سی کم میکنه دیگه می از این آیه این بحث اینه که الله تتخوف میزان خود این کار محرمه خود این کار خود این کار که انسان تقیانه در میزان بکنه در ترازو بازی بکنه و پول اینا گل اینا نه لا فقط هدف از این سازه نشده باز انجام نشده اون ببینید این کیش بوده برای خودش وزن برای خودش چون تاامل می کنه چند موردی یعنی اینجا تاامله چند موردی که معامله بله معامله اگر معامله شه دکار برد اون کار بردن نیست ببین شما میز میز به بردن چون میشین می‌شین می‌نينیسید میز بس توی انباری باشه این کار بردن نیست این باشه ما حالا در واقع این بحثه تعصیر در واقع نه در واقع و خارج هر دو محرم هم نه اینی که اون درویش اگر درویش بود اینو کوبه این کار حرام رو انجام داده کار حرام رو انجام بده البته میشه اینکه البته یا می میفرمای خدا قبول کسی که خود یک بار حرام کردن این من بده چون برابر این تعصیر کبائر هم هست ببین متکثر بودن جزء کبائر اما یک بار انجام ده جزء کبائر نیست اینا میشه مثلا به احکام ظواهر بعدی آیه ها که اطلاق ظواهرشام به علاوه بعد مرحوم شخ قدس الله نفسه دیگه بحث در میاد انشاءالله کافیه مرحوم شخ وارد وقت دیگری شدن که از این بحث یه ریشه دارم ما به هم که مرحوم متعرض شدن متعرض میشن و چون به ذهنم میاد که شاید مثلا خوب عباراتش توضیح داده نشده جیز دیگه فهمیده شده حالا به ذهن ما اینطور میاد حالا بنده صاحبات هسته که احایتش کرده شدید فرد معنا میکنم چون بعضی علام چیز اینجا نمیشتن که مدمیشه خیلی مطلب واضح نبوده در اینجور ما <سؤال> شده صورت اونم میشه دیگه نه به حسابو کیلو وزو هم چی میاد این سنگ کیلو, کیلو بر میذاره ترازو رو بازی کرده کیلو میذاره این طرف یه چیزی بشه تا 900 گرم تناسب این کار رو میفهم دیگه معروف بود مثلا بعضیا که بازی کردن مثلا روی وزن هاشون هیچ وقت یک پلی ترازو رو خالی نمیذاره همیشه مثلا یک وز توشه چون اگه خالی بسن همیشه پر میده یک وسیله یک طرف همیشه خور <تصفح> چون یکی هست اینم ما در نجف دیده بودیم بعضی‌ها معروف بدم به این از استجابه الله چون همه جا بوجه احساس نوجه شد مسئله که مرحوم شیخ دارم در اینجا ایناست که ولو از رویه به جن سیلی بحثی که البته حالا اون یک بحثی ایشون نبرمدن که ما الان اشاره کردیم حالا آره چون ایشون بحث درباره گفتن ما توضیح بعدیشون‌هایش بعد ارزمونید اگر یک مثلا یک ترازی که باج بازی کرده در یک قله ده 10 کیلو می‌گندم می‌ذاره که الان در حقیقت یکیش ناقصه نه کیلو نیمه حالا که از اینکه تاثیر هست و عمل حرام آیا این معامله هم ربوی است و حرام و باطل یا نه سوال دیگه البته یک بحث اینو که ربوی هستند باطل معامله یا نه اون یک بحث دیگه‌ایه که من بعد عرض میکنم مرحوم شیخ چون محمد روز بازشی بشه مرحوم شهر خیلط بحثیر عربی رو مطرح کردن وقت میگه میگه؟ میگه آلین درکیلو گنگو بروه به شما پروختن به اون درکیلو گنگو درکیلو در حقیقت نه کیلونیمه. تو ترازو هم گذاشتن ترازو بازی شده توقیان شده به قول تحبیر آیه مبارکه تحبیر و تجاوزی شده اون وقت این نه کلومین در مقابل درکیلو آیا این رباز و معامله باطل غیر شیخ خیلی فرمان ولو وازنر بردنی به جنسی البته من قبل از بر اینکه برای این مطلب بعضی واضح روشه قبل از اون در مطلب الان یه اشاره مفت داشتن یه درس فروع دیگر یه هست شبیه همینه اون, اون فر اینه که یک چیزی به واقع اشکه اثر داره به ظاهرش اثر دیگری داره این دو تا. مثلا اینجا اگر در رابع نهکیونیم گندم در مقابل ده کلو باشه رواست و حرام و باطن اما اگر درشیدو عنوان چی بود؟ عنوان معامل درشید و معامل درشید این ربانه است پس تلق عنوان درسته؟ طبق واقع درست نیست وقی این انواع مختلفی داره فقط این نیست راه های یعنی دیگر. فروع دیگری هم فوقها دارن مثلا پشتر ایک ای آقای نماز کن درمانی که ایشون زیده گفت پشتر این آقای که زیده هست نماز میخوان بعد اونش ه اون که یکی داره عنوان امام جماعت بود معادلش عنوان زیک رسول اما علمه امر بود واقعا زیک نبود امر بود گفت persian همجون آیا اینکه دست اعتماد او ذره میزنه یا نمیزنه در بحث به مباحث دیگر مثلا ببین کیسه ای که ده کیلو میفروشم میشن در حقیقت 9 کیلو یا ده کیلو مثلا دقیق بفهمید غیر از من ایشون که الان مساله ربا رو مطرح کردن غیر از مسئله خود صحت معامله هم مفرقه ده. مثلا که باقا من این ده کیلو گندم به شما سبوستم به ده هزار کنم فرص این گندم هم در بازار کونزه هزار کنم سوال اینه اما این گفت من بسیار این ده کلو به 10 هزار سوستن. بعد که رفتن معلوم کردم ورزی کردن هشت هشت, هشت کلو ده کیلو نیست دو کم کنگونی چی کرده سوالی که هست آیا این معامله اصلا باطله؟ یا نه این معامله صحیحه شما گفت درقی بگردن خلوصا به در تو مقام تصویر هر چیل داده بشید یعنی دو چیل دیگرم یعنی به عبارت اخراب اون طرف اصلی که فرض بکنه میگه من گفتم درقیل حالا هر چیل پس فرض کردم چون درقیلون 15 ازادان بگردن خواب به حیماد واقعی شتاب بکنه پس نکته اینه چون من عرض از نقطهی مهم در صحت معامله یعنی ما دنبال تصمیم اثر معامله و وقعه با اون انشاء بریم چون در اصطلاح های هر چیزی یک بدل حقیقی داره مثلا این کتاب بدل حقیقیش پونزه ازادت یک بدل اعتباری داره میخوشم به شما دوازه ازادتان یا میخوشم دیس ازادتان و مراد از صحت معامله اینه شما رو ملزم بکنیم به این بدل اعتباری بدل چهلی و الا اگر بخی ملزم بخیم این بدل که این معامل فاسد میشه قساد معامله ملزم کردن به بدل این معناش این نیست که معامله درسته ولذا در باب غم کودفرک بکنید در باب غم معامله رو یا امضا میکنه یا پس میکنه نمیتونه ملزم بکنه به تفاوت این نقطه فنمی کاره کتاب رو ازش شریف به ده هزار بعد مراجع قینات جربازار هزار نمیان بشوین تو کتاب رو که هری این معامله رو ما امضا میکنیم یعنی چون قیمتش ده هزار تون به تو گفته سمن سمن استباه هم قیمت قیمت همون بدل واقعی سمن قبل دل جعبی شما قیمت رو ده هزار تون قرار دارید با بدل واقعی که ده هزار تون باشه مخالفه پس این معامله بر برمیشدیم به بدل واقعی یعنی هزار هیچ کس از خواه ها فتحه میگن در اینجا شما یا باید به اصطلاح امضا کنید امضا با هم ده هزارتمن یا فرس کنید الزام به هزارتمن نمیشه الزام به ده هزارتمن هم نمیشه که ممکن است این در شیاره ایسا الزام میکنن یک کتاب خریده ده هزارتمن توش ای ویزارتمن میگن میشه کتاب نگرده و ما به تفاوته بکیده میگن الزام میکنن همون خب که اینجا میگه دو تا یا قبول می‌کنن با همین ای به 10 هزارشون قبول نکن دیگه الزام شده ها من تکراراً عرض کردم این همون نقطه‌ایه که میگن خیار ای علاف خلاف قواعده ما هیچ خياری نداره این دو که دیگه فراهمه که به اصطلاح ثلاثی باشه به اصطلاح بنده یک معنا تمام خيارات شنایه میگن یا امضا کن یا فسخ کن قائلش چرا چون اون جهلی شما اون بدانه جععلی آمده رو این عنوان 10000 تا کتاب 10000 تا شما موقعی بگین نه، کتاب رو قبول میکنن، اما 10000 به بدل حقیقی، اون نمیشه، بدل حق. چه این انشاء شده یا باید انشاء امضا بشه، اگر واقعا امضا بشه 10000 تا یا امضا نشه با طعس بشه برگرده. اما اینکه ارجاءش بدیم، امضاش بکنیم، ارجاء بدیم به بدل حضیج. این نمیشه. قبلا هم همینطوره. خيار قبلا هم. این خيار قبلی تمام خیاراتی دیگر قائم هم همینجور. اصلا نه تمام خی، اصلا قائلی دیگری هم نه. بازی دیگری هم نه. همینه کیا امضا یا پس، سلطی نباشه، تنها خیاری که سلطی خیار ایده. یا امضا، یا پس، یا ارز ما به کافه کنیم. کاله این یک معنی دیگر من رو شد امضا نشده توضیح دادن رو وقتی که باید بکنم، روشن شد که می‌تونم پس بنا برمی‌کنیم. که اینجا داریم، این علامتی که کافه کنیم. گفت این ده هزار کیلو رو به فروختم به ده هزار سومن سوال بعد معلوم شد هشت هزار کیلوز هشت کیلوز رو هزار. این آیا از قبیل خیار غرب نده یعنی یا معامله امزا کن یا پس کن یا نه معامله درسته یعنی چی؟ یعنی ملزم میشه به این ایمال و دو کیلوز هم باید اضافه کنه؟ این معنای صحت معامله این از مثلا روشن شد مثلا این از قبیل اختیار قبل من خیلی والا هش می‌ذارم من سوال آخر این, این کار باز بکن یا به دهمان قبولش کن در ازمان یا پس کو ما رو یا نه این معامله درسته این معامله درست یعنی این معنا روشن شد اما این بحث اختصاص رو ندارد. و نور. با که چون نور اروپا همه در تمام دنیا مطرح در دانش هو دوامن ده و از در بحث در بخشی که در میگاد به معاملات اعراب هم بحث بی و اینها کتابی داره عبدالرضا تنموری که از زورگان اهل به است دنیای عربی ایشون ای که از قانون دونهای بزرگی هستن از قوانین دنیای عرب به کرده و خیلی هم در قانون اروپا و آلمان و فرانسه و دیگران اسم داره مواد قانونی اگر اول بخوام در تپه لاقل اروپاشون یا کنه ما ایشون من خیلی هم مراجعه زیاد در اونجا بخوینن نگاه بکنین خیلی مفیده کتاب ایشان در همین بحث فزولی خیلی آثار لطیفی داره نکات بسیار خوبی داره که اینطور در بحثش اثر کرد و از اهل سنت هم اگر بخویم کتابهایی که جنبه قانونی داره در زمان عثمانی همین ترکیه فعلی باشه یک مجموعه یه مثل قانون قانون مدنی اونا درست کردن قبل از ماها به نام المجله خود مجله معناش همینه المجله که درست کردن قوانین به اصطلاح مدنی که در باب بیع و فروش و بیع شراب و مخاسر محرم و اینها در مثل ماده قانون ماده 123 اینجوری میشه به ماده قانون کتاب بسیار مفیدیه و در جامعه خودشون شرح المجله و مرحوم آیا فرانسوی کاشور کتاب قدس الله سره یک تحریر المجله داره که متاسفانه ناقص در المجله شون یعنی همه فروع و مواد رو شرح نداده بیشتر اونجایی که مخالفین مجله به طور طبیعی رو فقه احناف نوشته شده چون ترک ها، ترکیه هنفی بودن این مجله رو توی هنفی ها تنظیم کردن این تنظیم قانونی شده به ما زمان ما می تنظیم قانونی خصوصا موازی قانونی در از اگر بخوایم مرادف با کارهای فقیه ما در بهسا مکاسب یا مقاصد محرمه یا بی یا اخسان یا راج و شروط در دنیای غرق رو نگاه کنی شده دو بسیار مفیده الوسیقی شنون یا در جد فتور هم از و در دنیای اسلام غیر آلم تشریع که به صورت مدرن در کتاب المجله و اگر اختلاف نظرش باشی این کتاب مرحوم آشانسین هم بد نیستا هدی خیلی قدرت علمی فراوان ندارم و بد نیستا هدی به نام تحریر المجله یه شرح مجله خود علماء همه سنب زیاد درن که یکی چاپ شدن اینه یکی از اوناش من زیادی انص پس نقطه انشاءالله رو اوشن سو داره شما نکته این که اگر باب ده کیلو گندم به طروخت هم به ده تومن به قیمت بدل واقعیش هم پونزه تومنه بدل باقیش پونزه تومن بعد که نگاه کردیم هشت کیلو بود آیا این معامله صحیح هست؟ یعنی چی؟ یعنی اون ملزم میشه دو کلو گیره به همون ده تومن یا این معامله رو باید بگیم یکی از درا داریم میتونیم با همین هشکیلو رو با دهتوان قبول کنیم میتونیم معامله رو کنیم دیگه معامله سریعی دیگه یا همین هشکیلوی که موجوده چرا چون گفت این گمگو این اصطلاح هایی در آن هم بین و عنوان عنوان دهتوان واقع هشکیلو تکالفی شد بین واقع و بین عنوان بین معنون و بین عنوان پشت سر این امام جماعت که دیدن نماز بعد احمد احمد بل. تقالب بین اونهان و معنون از آن سوال شد که افقه مثلا علم و که گفتن مثلا مقال مشتی هستن از این, آقای این آقایی گفتن که استثمت شدن تحمید رو بند که علم و بود بین عنوان و معنون تقالب پیدا شد یه بحثیست بین این اینجا یه حالا ما مانوز شد من همه یک تفسیری داره ولو بازن رب به جنته. من سریع بخونم فتف رفی ما فه اینجر از عن معلوم کلی فی یک موزونه علا به الوزن اشتغل از ظلمتو بگه اگه گفته کلیه در کیلو و من درم در هشتی ببینم بعد هشتی درامت دو کیلو می و بازه ده و المعین اما گفت این گندم خارجی این این گندم خارجی که ده کیلوز اگر موضوع ما بود به اعتقاد المشتری او به کرد و از داده محاوزه فیل لزوم ربا ولو جرد علیه علا انهو او داره کرد ورز اگر گفت این اینی که دارایه بین این عنوان به جرد داره که عنوان لرعوز در همون به عنوان این که این افرد باشه فحصل الاختلاف بین عنوان و المشارعه لم یبعوت استهه این حصل الاختلاف بین عنوان و المشارعه یعنی حصل عنوان بین عنوان و المعنوه و اونیشون بجه و واقع بجه مشارعه میشه واقعا دکنه این بحث الان فردا انشاءالله متعرض میشی خروبی رو پیشت در اینجا گفتن چون این از اراغت داره که